چنان آید نگارم را گمانی که من هستم کنون در شادمانی ندارد آگهی از روزگارم که من چون مستمند و دل فکارم. چرا درد از طبیب خیش پوشم بلا بیش آورد گر بیش کوشم نجویم بیش از این بادل مدارا کنم رازش بگیتی آشکارا روم با دوست گویم هرچه گویم مگر زنگ جفا از دل بشویم آنگاه که رامین را توان از کف بدر آمد بران شد که سوی ویست بشتابد تا مگر از سوز هجران برهد و آتش دل فرو نشاند همکنون راه شهر دوست گیرم که گر میرم به راه دوست میرم مرا تنها در رفت باید که گر لشکر برم با خود نشاید چون من لشکر برم با خود در این راه زهال من خبر یابد شنشاه بمانم خسته دل چون حلقه بردر شود نومید جانم رنج بیبر دلا تا کیز مهراتش فروزی مرا در بوته تیمار سوزی مبادا چون تو دل کس را به کیهان که بس مستی و بیهوشی و نادان چرا رامین کرد با دل ساعتی جنگ همون از دل هزیمت کرد دلتنگ فرود آمد ز تخت شاه وارش بیاوردند رخش راه وارش به پشت رخش كهپیكر درآمد تو گفتی رخش او را پر برآمد ز دروازه بشد چون رخش شناسان گرفته راه و هنجار خوراسان رامین که از هجر دلدار غمان بسیار بر دل داشت سرانجام از شکیبایی ماند و به امید دیدار ویس به سوی مرو روی نهاد در راه آزین با پیام ویس در رسید و رامین که از نامه محبوب سخت بیقرار گشته بود زاری ها کرد و آنگاه در گوشه ای افتاد خوشابادا که از مشرق تو گویی که از گلستانی برآمد، نیامد از گلستان بوی نسرین چون چن بوی ویس آمد به رامین همی گفت این نبوی گلستان است همانا بوی ویس دلستان است نسینی کان گذر بریار دارد گویی تبله اتار دارد چه بادستین که امید بهی داد مرا از بوی دلبر آگهی داد جاز این را بدید از دور بشناخت همانگه رخش گلگون را تاخت شکفته روی و خندان رفت آزین زمین بوسه در پیش رامین پیاماور بپرسیدش فراوان زرفته حالهای روزگاران چو رامین نامه ی سیم بردید تو گفتی گور دشتی شیر نردید همیتا تا نامه ی دل بر همی خاند زدیده سیل بیجاده همی راند. گهی بر رخ نهادی نامه ی ویز گهی بر دل نهادی جامه ی ویز وقتی رامین قرار از دست رفته باز یافت آزین را با نامی پرسوز به سوی ویز فرستاد و خود نیز از پس او روانه مرگ گشت چلختی هوش باز آمد به جانش سلف شد در دندان را دهانش پس آنگه پاسخی بنوشت زیبا بسی کوتر از منسوج دیبا سر نامه به نام ویس بطروی مه سوسنبر و مهر سمنبوی O Raa, O Raa, گنه کارم همی ترسم که با من گنه کارم همی ترسم که با من کنی کاری باشد قوم دشمن دا بنا کردن سرای جا با زندگانی تو را اورنگ بادا جاودانی نیارم ماه رخسار تو دیدن نیارم نوش گفتارت شنیدن گنه کارم ترسم که با من کنی کاری که باشد کام دشمن اگر چه این گنه از بون مرا نیست گنه بر تو نهادن هم روانیست به مهراندر نمودی زود سیری، مرا دادی به خود کامی دلیری. گمان من به مهر تو نه این بود، گمانت آسمان بردم زمین بود. تو خود دانی که من در مهربانی بنا کردم سرائی جاودانی. تو ویران کردی آن خرم سرایم که بود از خرمی شادی فضایم، گناه توست و گویم بیگناهی خداوندی کنی تو هرچی خواهی تو را بی من نباشد شادمانی مرا بی تو نباشد زندگانی نوشتم پاسخ تو بر سر راه سخنها کرد من در نام کوتاه کجا من در پس نام دوانم؟ اگر صد بند دارم بگسلانم چنان آیم شتابنده در این راه که تیرن در هوا و سنگ در چاه. چو انجامیده شد گفتار رامین چو باد از او برگشت آزین جهان افروز رامین از پس اوی چو چوگاندار تازان از پس گو گرفته هر دو هنجار خراسان بر ایشان رنج راه آسان آزین با پیام رامین به مرو رسید و به دیدار ویس شتافت ویس بسی شادمان گشت و از آتش شوق و سوز دل قرار از کف بداد و متحول شفتاد اگرچه عشق سر همه رنج درد ربان هست او یکی شادی یکی شادی گخه نامست و پیغان تعرشادی درچه عشق سر سر زیان است همه رنج تن و درد ربان است دو شادی هست او را در دو هنگام یکی شادی گه است و پیغام دگر شادی دم دیدار دلبر دو شادی با تیمار بیمر نباشد همچه آشق هیچ رنجور به خاسه بر جانان بود دور نشاست روز و شب چون دیدبانان بانان به راه نامه و پیغام جانان سمن بر ویس بیدل بود چونین نشسته روز و شب بر راه آزین چو کشته تشنه بر امید باران و یا بیمار بر امید درمان چو آزین را بدید از راه تازان چو باغ از باد نیسان گشت نازان چنان خرم شد از دیدار آزین که گفتی یافت ملک مصر یا چین یکا یک یاد کرد آزین که چون دید نهی به عشق رامین را فزون دید به گفتان قم که او را از هوا بود بر آن گفتار او نامه گوا بود چ زو هزاران بوسه دادش گهی بر چشم و گه بر دل نهادش به شیرین بوسگانش کرد شیرین به مشکین زلفکانش کرد مشکین دو روز آن نامه را از دست ننهاد گهی خواند و گهی بوسه همی داد همیتا در رسید از راه رامین ندیم و غمگساغرش بود آزین پسانگه روی محپیکر بیاراست سر مشکین کله بر گل بپیراست نگاری بود گفتی نقض و دلکش نهاده دست مهرو را بر آتش به بام کشک موبدبر بمانده بر راهی یکی دیده نشانده شب آمد ماه تا به او نیامد به شب آرام و خواب او نیامد تو گفتی به دیباش هموار به زیرش همچو گلبن بود پرخار سرگه ساعتی جانش براسود دلش بیهوش گشت و چشم بغنود چو رامین آمدن در کشور مرد به چشمش هر گیاهی بود چون سر. زمینش چون بهشت و شاخ چون هور گلش چون قالیه برگشت چو کافور تو گفتی در زمین مرب شه جان در مینو برو بخشاد رزوان چون از دژ دج مرب آمد از راه به بام کوشت بر دیده شد آگا یکا یک دایه را زو آگهی داد دل دایه شد از اندیشا زاد دبان شد تا به پیش ویس بانو بگفت آمد به دردت نوش دارو اگر صاحب دلان باب انایت بگشایند بقیه داستان و آنچه بر دل دادگان گذشت در برنامه آینده تقدیم می شود. نسیم نادر فزینپور با همکاری هایده وفایی سیمین مجید نجاحی سرخوش حسن ناهید محمود رحمانی پور اسکرپور یوسف زمانی امدانیان، بهزاد فراحانی، شجره، مریم، ازرا، خلعتقری، فریدون اسماییلی و آذر پژوهش موسیقی از علی تجویلی یگونده امیر حسین خانشهری زیر نظر امیر فريدون گرکانی